دل می روید به دستم صاحب دلان خدا را دردا که راز پنهان خواهد شداش کارا کشتی شکستگانی ای باد شرط برخیز باشد که بازبینم دیدار آشنا را ده روز مهر گردون افسانه است و افسون نیکی به جای یاران فرصت شمار را در حلقه گل و مل خوش خاند دوش بلبل حات سبوه حبو یا ایه از سکارا ای صاحب کرامت شکرانه سلامت روزی تفقدی کن در بیش بینوارا آسایش دوگیتی تفسیر این دو حرف است با دوستان مروت با دشمنان مدارا در کوی نیکنامی ما را گذر ندادند گر تو نمی تغییر کن قذارا آن تلخ وشک صوفی ام الخبائسش خاند اشحالنا و احلا من قبلت العزارا هنگام تنگ دستی در عشقوش و مستی که این کیمیای هستی غارون کند گدارا سرکش مشو که چون شم از غیرتت بسوزد دلبرد که در کف اوموم هست سنگ خارا آینه سکندر جام می هست بنگر تا بر تو عرض دارد احوال ملک دارا خوبان پارسیگو بخشندگان عمرند ساغی بده بشارت رندان پارسارا حافظ به خود نپوشیدین خرقه میالود ای شیخ پاک دامن معذور داد مارا